هزینه تعلل کردن مطمئنم که درباره قدرت بهره مرکب چیزهایی شنیدید در حقیقت احتمالا بارها درباره آن مطالبی شنیده شنیدید این بار چه چیزی فرق میکند هیچ چیز مگر اینکه دست به کار شوید تنها چیز مهمی که میتوانم درباره برتری خفیف به شما بگویم این است که همین الان در حال اثر گذاشتن بر زندگی شماست حالا یا به نفع شما یا علیه شما؟ بنابراین تعلل نکنید. انتظار و درخواستم از شما این است که قبل از اینکه به آخرین بخش این کتاب برسید برتری خفیف را در امور مالیتان به کار ببندید تا سرمایه و داراییتان را به طور مداوم افزایش دهید. برخی اقدامات ساده روزانه هفتگی یا ماهانه هستند که در طول زمان استقلال مالی را برایتان به ارمغان میآورند. آیا انجام دادنشان آسان است؟ به طرز تعجب بله آیا انجام ندادنشان نیز آسان است ؟ متاسفانه بله. برای اینکه درکی از هزینه تأخیر و تعلل کردن داشته باشین به این مثال گوش دهید. فرض کنیم که شما و دوستتان در بیست و 23 سالگی از دانشگاه فارغ و تحصیل میشوید هر دوی شما کتاب برتری خفیف را مطالعه می کنید و تصمیم می گیرید که به اندازه کافی پس انداز کنید تا بتوانید در 67 سالگی با بیش از یک میلیون دلار بازنشسته شوید. دوست شما همین حالا این کار را شروع می کند و کاری می کند که هر ماه به طور خودکار 250 دلار از فیش حقوقیش به حساب صندوق بازنشستگی شخصی واریز شود. اما از نظر شما، زمان زیادی برای انجام دادن این کار وجود دارد و آن را به تأخیر می اندازید. شما امسال، سال بعد و حتی سال بعد از آن نیز این کار را شروع نمی کنید. در واقع تا زمانی که سی و نه ساله میشوید از این کار تفره می روید. سپس، با شروع چهل سالگی به این فکر می‌افتید که شاید الان زمان مناسبی برای شروع پسنداز بازنشستگی است، در همان زمان از دوستتان می‌پرسید که وضعیت حساب صندوق بازنشستگی شخصیش چطور است. و وقتی که می‌گوید سهم پرداختی او به پایان رسیده است، ایراد زده میشوید. پس از سرمایه گذاری دلار در ماه به مدت 18 سال و با نرخ سود 8 درصد سهم پرداختی او به پایان رسیده است. حالا او می‌تواند پسنداز کردن را متوقف کند و فقط اجازه دهد که سود پسندازش انباشته شود. وقتی که او 67 ساله می شود، مبلغ اندکی که شروع به پسندازش کرده بود به بیش از یک میلیون دلار می رسد. حتی اگر او اصلاً یک سنت دیگر هم روی آن نگذارد. با خودتان می تعلل کافی است و زمان عمل فرا رسیده است. بلا فاصله شروع به پسنداز ماهانه 250 دلار می کنید. چند سال طول می کشد تا به دوستتان برسید؟ جواب این سوال تأصف برانگیز است. شما هرگز به او نمیرسید. دوستتان با زود شروع کردن توانست پس از 18 سال پس انداز کردن در ورودی این سرمایه گذاری را ببندد و تکانش حاصل از کاری که او شروع کرده بود در 67 سالگی یک میلیون دلار برای او ایجاد خواهد کرد اما از آنجایی که شما این کار را بسیار دیر آغاز کرده اید از آن مزیت برخوردار نخواهید بود زمانی که هر دوی شما به 67 سالگی می رسید در مقایسه با 54 هزار دلاری که او در مدت 18 سال سرمایه گذاری کرده است شما 81 هزار دلار را در مدت 27 سال سرمایه گذاری کرده اید و هنوز هم باید ماهانه 250 دلار کنار بگذارید. با این حال شما فقط با کمی بیش از یک چهارمه میلیون به سرمایه گذاریتان پایان می دهید. اما اگر بیست و سه ساله نباشم چطور؟ چه می شود اگر چهل و سه ساله باشم؟ یا شست و سه ساله؟ آیا به این معنی است که زمان را از دست داده آیا می گویید دیگر برای من خیلی دیر شده است؟ اصلا به هیچ وجه شما هیچ وقت خیلی پیر نیستید و هیچ وقت هم برای شروع بکارگیری تاکتیک های برتری خفیف برای دستیابی به رؤیاها اهداف مالی و غیر دیر نیست دیوید باخ، نویسنده کتاب پرفروش و فوقلاده شروع دیرهنگام پایانی غنی، در کتابش دقیقا به همین موضوع پردازد. این کتاب نیز، یک همراه عالی برای برتری خفیف است. خیلی رک و ساده، منظورم این است که تعلل کردن و به تأخیر انداختن کارها حزینه دارد. اما هیچ وقت برای شروع کردن کاری دیر نیست. برای تعلل کردن همیشه دیر است. روی دیگر برتری خفیف موجودی حساب صندوق بازنشستگی دوستتان در هنگام بازنشستگیش به بیش از یک میلیون دلار میرسد. پسندازهای مادرم مانند دو برابر شدن سکه های یک پسر آن مرد ثروتمند به آهستگی مرکب میشوند. سنبل آبی کوچک چندین برابر میشود. دست و پا پازدنهای قرباقه کوچک سرانجام خامه را به کره تبدیل میکند. همه اینها نمونههایی از طرز کار برتری خفیف هستند و نشان می دهند که چگونه میتواند در طول زمان نتایج مثبت شگفتانگیزی به بار آورد. اما این تمام داستان نیست چرا که برتری خفیف در جهت معکوس نیز عمل می کند. انجام دادن آن اقدامات منظم ساده دقیقا تنها دلیلی بود که من با بهترین رتبه از آموزشگاه عالی کسب و کار فارغ و تحصیل شدم و آن موفقیت زود هنگام را در زمینه مدیریت تجربه کردم. سپس نیمه دیگر آن چرخه سینوسی نمایان شد. در آن دوران که از نقطه بقا به سوی شکست سر میخوردم، از انجام دادن آن اقدامات منظم ساده دست کشیده بودم و همین موضوع تنها دلیلی بود که موجب شد من در سراشیبی شکست قرار بگیرم. من انتخابهای روزانه کوچک و اشتباهی داشتم که خیلی بی‌ضرر به نظر می اما بدون اینکه متوجه باشم من را به عقب و به سوی شکست سوق می دادند. به همین دلیل بود که زندگیم احساسی رنجاور شبیه قسمتی از سری سوم فیلم پدرخوانده داشت. همانجا که شخصیت آل پاچینو در فیلم میگوید: "درست زمانی که فکر میکردم از دست مافیا خلاص شده‌ام، دوباره من را آلوده‌ای بازی کردند." برتری خفیف بیرحم است و در دو مسیر عمل می کند اگر از آن در جهت مثبت استفاده کنید، شما را به سوی موفقیت رهنمون میسازد. اگر آن را با بیدقتی به کار ببرید، شما را به سوی شکست سوق می می‌دهد. اقدامات منظم ساده که در طول زمان مرتباً انجام شوند، اشتباهات ساده در تصمیم‌گیری‌ها که در طول زمان بارها تکرار شوند، انتخاب به همین سادگی است. شما می‌توانید با یک میلیون دلار شروع کنید، اما اگر برتری خفیف را درک نکرده باشید، ممکن است همه آن را از دست بدهید. شما می توانید فقط با یک سکه یک سنتی شروع کنید و اگر برتری خفیف را درک کرده باشید می توانید به هر جایی که آرزویش را دارید برسید. مادرم آن را درک کرده بود. من در چند دهه اول زندگیم آن را نمیدانستم، بیشتر مردم نمیدانند. بسیاری از مردم مانند آن پسری هستند که یک میلیون دلار را گرفت و خیلی بیشتر از ارزش آن را از دست داد. یا مانند آن قورباغه هستند که نمیدانست فقط اگر مدت زمان کافی به همان دست و پا زدن ناچیزش ادامه میداد می توانست خامه را به کره تبدیل کند. بسیاری از مردم کارهای سادهی روزانه را که می تواند آنها را به جایگاه دلخواهشان برساند ادامه نمی دهند چرا که نمیدانند برای مشاهده نتایجی که خلق می کنند باید به اندازه کافی در آن مسیر باقی بمانند. اما خواه آن نتایج را ببینند یا نه آن نتایج قطعاً فرا می رسند. درست مانند قطاری که از دور ها به سمت ما می آید. هنگامی که آن مرد ثروتمند به پسرانش گفت می خواهم به شما بدهم پسر دوم گمان کرد که آن هدیه پول است. پسر اول با دقت بیشتری به او توجه کرد و فهمید آن هدیه پول نیست بلکه حکمت و دانش است. پیرمرد ثروتش را به سادگی به پسرانش نمیداد. زیرا میدانست بدون آن حکمت آن ثروت خیلی زود از بین می رود. در عوض او فلسفه و حکمتش را به آنها منتقل کرد. هدیه پدر درسی در خود داشت، بله، درباره پول. اما در حقیقت درسی درباره این واقعیت بود که اقدامات کوچک و ساده که امروز انجام می دهید وقتی با گذشت زمان مراکب می شوند تفاوت بسیار بزرگی به وجود می آورند. درسی درباره نیروی بلقوه و شگرف چیزهای بظاهر ناچیز و ناتوانی مانند سنبول آبی یا سکه یک سنتی. درسی در صبر و درک این موضوع که گام های کوچکی که در طول زمان مرکب می شوند، تفاوتی شگرف ایجاد می کنند. درسی در این باره که اقدامات کوچک و ناچیزی که هر روز انجام می دهید و خطیر و مهم به نظر نمیرسند در حقیقت بسیار مهم هستند. این آن اقدامات نه تنها تفاوت ایجاد می کنند بلکه همه تفاوتها از همانها ناشی می شود. درسی درباره ایمان داشتن به فرایند اقدامات مثبت ساده‌ای که در طول زمان تکرار شدند، این ایمان که معجزه ها اتفاق می‌افتند، فقط اگر بدانید تا کی به این فرایند اعتماد کنید و تبدیل خامه به کره را ادامه دهید. این درسی بود درباره برتری خفیف و اینکه چگونه می‌تواند زندگیتان را دگرگون کند. حق انتخابی که آن مرد ثروتمند به پسرانش داد همان حق انتخابی است که جهان در هر لحظه از زندگی من به ما می‌دهد یک دایره غنی و در حال رشد از دوستان یا تنهایی و عزلت سر سرزندگی و جنبش فراوان یا کاهش تدریجی سلامتی و تندرستی موفقیت یا شکست خوشبختی یا بدبختی خوشنودی و رضایت یا یأس و ناامیدی میلیونر یا ولگرد ساحلی هر روز و هر ساعت، این شما هستید که انتخاب می کنید و تأثیر آن انتخابها مانند لایه زخمی سنبل آبی بر سطح زندگی شما پخش می شود. کتاب برتری خفیف راهنمای شما برای رسیدن به هدیه آن مرد ثروتمند است. این کتاب به شما کمک می کند تا عادتهای تفکر و عمل کردن را یاد بگیرید. عادت‌هایی که به شما اجازه می‌دهند هوشمندانه و عاقلانه انتخاب کنید و همیشه سکه‌ای را انتخاب کنید که ارزشش دو برابر می‌شود و تحت تأثیر طمع ناشی از کسب آسان یک میلیون دلار قرار نگیرید. این کتاب شما را وادار می‌کند تا هنگامی که خامتان به کره تبدیل می‌شود، به دست و پا زدن ادامه دهید. این کتاب به شما کمک می‌کند تا سمبلی را انتخاب کنید که میخواهید آن را در زندگیتان بکارید. چنانکه که بتوانید سطح آبگیر زندگیتان را با گلهای انتخابیتان بپوشانید. های شخصی از خوانندگان کتاب دیو هال، هایلند، ایالت یوتا من توی خونواده متوسط بزرگ شدم. جایی که به من یاد دادن به مدرسه برم، نمره های عالی بگیرم و یه شغل خوب پیدا کنم. متاسفانه برنامه من، به دلیل شرایط جسمی یکی از افراد خانواده‌ام که البته کنترلی روش نداشتم از مسیرش خارج شد. توی 21 سالگی شیش روز هفته رو توی شغل با درآمد حدوداً چهار دلار در ساعت مشغول کار بودم و فلسفی رو دنبال می‌کردم که باش بزرگ شده بودم. مطالعه کتاب برتری خفیف فکرمو به افقای جدیدی برد. من متوجه شدم که آیندم میتونه بهتر از گذشتم باشه و با یک هم تغییر تو فعالیت هم و داشتن مداومت در اون فقط زمان کافی لازم بود که به زندگی دلخواهم برسم. امروز نه تنها میلیونر هستم بلکه پنج فرزند فوقالعاده و یه همسر زیبا دارم که زندگیمو صرف اونا میکنم. مهم نیست تو چه وضعیتی هستین، قطعا با بکار بستن اصول برتری خفیف در طول زمان میتونین خط سیر زندگیتونو به سوی بهتر شدن تغییر بدین. جری سانچز، الپاسو، ایالت تگزاس. بعد از مطالعه کتاب برتری خفیف تصمیم گرفتم اونو تو شغلم به کار بگیرم من هیچ کار بزرگ و خطیری انجام ندادم فقط تصمیم گرفتم که هر روز ده صفحه از یک کتاب خوب رو بخونم و قبل از هر گونه تصمیم گیری کاملا به جوانه فکر کنم از خودم می آیا این کار به من کمک میکنه یا به من آسیب می رسونه؟ همین تصمیمات روزانه بود که همه چیز چیزو دگرگون کرد. حدود یه سال و نیم بعد از جای دادن این آدت ها تو زندگیم به موقعیت شغلی رسیدم که همیشه آرزوشو داشتم. قبل از بکار بستن اصولی که تو کتاب برتری خفیف خونده بودم، شیش سال بود که برای اون شرکت کار میکردم. بزرگترین شادیم وقتی بود که رئیسم منو به دفترش فراخوند و گفت در دو سال گذشته تغییر کردم. بهش گفتم خودم اصلا متوجه نشده بودم، اما اون جواب داد خوب دیگران که متوجه شدن. لیندا کیدی، دستین، ایالت فلوریدا من اصول برتری خفیف و تو بسیاری از جنبه های زندگیم به کار بردم خورد کردن هر پروژه به اهداف سالانه، نتایج ماهانه، کارهای هفتگی و اقدامات منظم روزانه به هم کمک کرده تا دستاورده بسیاری تو جنبه مختلف زندگیم کسب کنم من با تعیین اقدامات منظم روزانه تونستم بیماری سرطان شکست بدم و به سلامتی دست پیدا کنم اصول برتری خفیف با مرکب شدن در طول زمان تو هر جنبه‌ای که انتخاب میکنین یه تغییر خیلی اساسی ایجاد می‌کنه نکات مهم اقدامات منظم روزانه همان اقدامات کوچکی که در طول زمان مرتبا تکرار می‌شوند سرانجام تفاوت بین موفقیت و شکست را ایجاد می‌کنند برتری خفیف بی رحم است و در دو مسیر عمل می کند. اقدامات منظم ساده یا اشتباهات ساده در تصمیم گیری ها که در طول زمان مرتباً تکرار شده اند یا شما را به موفقیت می یا شما را نابود می کنند. بدون برتری خفیف ممکن است با یک میلیون دلار شروع کنید و همه آن را از دست بدهید. با برتری خفیف می توانید با یک سکه یک سنتی شروع کنید و به هر چیزی که آرزویش را دارید دست پیدا کنید.